شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shinoto.com هریپاتر و زندانی آسکابان جلد سوم از مجموع داستانهای هریپاتر نوشته جیكی رولینگ ترجمه ویدا اسلامیه صورتش را پاک کرد و گفت هیچ سر نمیارم چی شد هرمیون گفت خب او موجود اون ساز به اطراف نگاه میکرد و اون وقت تو رون که هنوز وحشت زده بود گفت من فک کردم دوچار حمله سر شدی بدن مثل چوب شد از رو صندلی افتادی پایین هرمیون اطراف کوپه را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد که پروفسور لوپین از کوپه بیرون رفته گفت بعد پروفسور لوپین از بالای سرت زد شد و به طرف دیوانساز رفت. چوب دستش در آورد و گفت که هیچ کدوم از ما بلک رو زیر شنلش به نان نکرده و وقتی دید ساز تکون نمیخوره زیر لب چیزی گفت و از انتهای چوب دستیش یه چیز نرهه بیرون اومد و به طرف اون رفت. دیبون سازم چرخید و رفت. هری سر در نمی آورد. کم کم داشت احساس شرمندگی میکرد. همه دچار ترس شده بودند اما چرا هری آنطور از پا افتاده بود در بقیه ای راه دیگر کسی چیزی نگفت. وقتی قطار ایستاد و بچه‌ها بیرون آمدند، صدای آشنایی گفت: "کلاس ها از این ور بیا." هرته برگشتند و ایگل تنومند هاگرید را در آن سوی سکو دیدند. هنگامی که به برج رسیدند، پروفسور مک‌گونگال هرمیون را به دفتر خود برد تا در باره برنامه درسی صحبت کند. بعد به سرسرا رفتند و هری متوجه شد که خبر از روش توسط آن دیوانه‌ساز همه جا پخش شده است. بدتر از همه مالفوی و داردستهش بودند که هری باید خود را برای تمسکورهای آنها آماده می کرد. وقتی مدیر مدرسه برای سخنرانی از جایش برخاست، همه ساکت شدند. پروفسور دانبلدور با وجود کهولت سن مردی پر جنب و جوش بود. مو و ریش بلند و نقرفامش به پایش می رسید. بینیش اقاوی بود و عینکی با قابی نیم دایرهی به چشم می زد. به اگوارد خوش اومدین. آغاز سال تحصیلی جدید را بهتون تبریک میگم. اما باید چند نکته را بهتون تذکر بدم. همونطور که تا حالا متوجه شدین، مدرسه ما میزبان گروهی از دیوان آسکابانه که به دستور وزارت سحر و جادو به اینجا اعزام شدند. اونها جلوی همه درهای ورودی مستقر هستند و تا زمانی که در اینجا حضور دارند، هیچکس نباید بدون اجازه از مدرسه خارج بشه. دیوان نه با دوز و کلک فریب میخورن نه با تغییر غیافه حتی شنل نامر هم تأثیری نداره رون و هری به هم نگاه کردند. دامبلدور ادامه داد من از شاگردان ارشد میخوام که مراقب دانش آموزای دیگه باشم. پرسی که چند صندلی با هری فاصله داشت سینه را جلو داد و با خودپسندی به اطرافش نگاه کرد دامبلدور گفت نکته بعدی خوشحال کننده است. امسال مفتخرم که به دو استاد جدیدمون خوشامد بگم اولین استاد پروفسور لپین هستند که تدریس دفاع در برابر جادوی سیاه را به عهده دارند صدای تشویق پلاکنده و نسبتاً بی دانش آموزان بلند شد پروفسور لپین در کنار سایر اساتید که بهترین رده هایشان را پوشیده بودند بسیار جنده به نظر می رسید دامبلدور ادامه داد و اما دومین استاد جدید کسی نیست جز روبیوس حقید برای درس مراقبت از موجودات جادویی. هری، رون و هرمیون مات و مبهود به هم نگاه کردند. بعد همراه با سایر دانش آموزان کف زدند. ابراز احساسات دانش آموزان گریفندور از همه پرشورتر بود. هری به جلو هم شد تا بتواند هاگرید را ببیند. هاگرید که مثل لبو قرمز شده بود سرش را پایین انداخته به دستهای بزرگش نگاه میکرد لبخنده ها که از رضایتش در زیر ریش های نامرتبش پنهان شده بود. صبح روز بعد هری، رون و هرمیون وقتی برای صرف صبحانه وارد سرسرای بزرگ شدند چشمشان به مالفوی افتاد که ادای قش کردن هری را در میآورد و اطرافیان را می خندند هرمیون سعی می کرد خود را سرگرم خواندن برنامه درسیاش نشان دهد. بعد از رفتن مالفوی، رون نگاهی به برنامه هرمیون انداخت و گفت ببین، درسات با هم تداخل داره روزی ده تا کلاس داری تو که نمیتونی در یک آن سر تا کلاس باشی. هرمیون گفت: مفرخرباتی در نیار من و پروفسور گنگال با همین برنامه رو نوشتیم. اولین کلاس در واقع هیچ شباهتی به کلاس درس نداشت. آمیزه‌ای بود در یک اتاق زیر شیروانی و یک قاهرهخانه قدیمی. ناگهان صدای ملایم و مرموزی از دور به گوش رسید که میگفت خوش آمدی خوشحالم که بالاخره شما را توی دنیای ما دیدم. پروفسور تریلانی از فضای تاریک بیرون آمد و دانش آموزان در نور آتش چهره او را دیدند ساهره بسیار لاغری بود که تعداد زیادی الانگو و دستبند در دستایش و چندین خلخال در مچ پاهایش به چشم می‌خورد. به کلاس پیشگویی خوش اومدید گمون نمی‌کنم قبلا منو دیده باشید به خاطر اینه که اگر زیاد تو هیاهوی مدرسه باشم چشم درونم تار میشه بعد با ملایمت شالش را مرتب کرد و گفت درس پیشگویی از همه فنون جادوگری سختتره در این درس کتابها کمک چندانی به شما نمیکنند با این جمله هری و رون به هم نگاه کردند و به هرمیون که از شنیدن این جمله مات و مبهوت مانده بود پوسغند زدند پروفسور تریلانی ادامه داد امسال روشهای ابتدایی پیشگویی را یاد میگیری در ترم اول تفصیل فال چای ترم بعد هم کفبینی در ترم تابستانی به مبحث گویهای بلورین میرسیم می رسیم. متاسفانه ماه فوریه به دلیل شیوع و انفلانزا در درسمون وقفهی خواهیم داشت حتی صدای خود منم کاملا می گیره هلوش اید پاک هم یه نفر از این جمع برای همیشه ترکمون میکنه. بعد از این جمله سکوت سنگینی بر فضا حکمفرما فرما شد بعد ادامه داد حالا به گروه های دو نفری تقسیم بشین. از قفس فنجون بردارین و بیاین تا براتون چای بریزم. بعد بشینین و چای رو بخورین و تفالش رو تهش بذارین و فنجون رو برگردونین. بعد بدین دست دوستتون تفالتون رو بگیره. برای تفسیر شکل‌ها میتونین به صفحه و شش کتاب روشنبینی آینده مراجعه کنین. من خودم میام سر میزاتون و راهنماییتون میکنم ناگهان آستین نویل را که تازه میخواست از جایش بلند شود گرفت و گفت عزیدن وقتی اولین پنجونت تا شکستی خواهش میکنم از پنجونای گل آبی بردار پیشبینی پروفسور تریدنی زودتر از آن که انتظار میرفت به بغو پیوست همین که نویل به قفصه ظروف چینی نزدیک شد صدای شکستن چیزی به گوش رسید پروفسور با جارو و خاکنداز آهسته به نویل نزدیک شد و گفت عزیدن. خواهش میکنم یکی از اون آبیا را بردار وقتی پروفسور در فنجانای حری و رون چای ریخت سر میز خود برگشتند تا هرچه زودتر یک یکدیگر را بگیرند پس از چند دقیقه پروفسور تریلانی رویش را رو به طرف آنها برگرداند و خود را با سرعت به میز آنها رساند بعد فنجان حری را از دست رون قاپید و با لحن سرزنشآمیزی گفت عزیزم بده ببینم همه ساکت شدند و به او چشم دوختند پروفسور تریلانی پنجان را برخلاف جهت های ساعت میگردند و با دقت درون آن را نگاه می‌کرد. سرانجام گفت: پسر عزیزم، نه، بهتر چیزی نگم. نه، خواهش می‌کنم ازم نپرس. توی فنجون تو، توی فنجون تو یه طالع نحسه. هری گفت: یه چی؟ اتنون داشت تنها خودش نیست که منظور پروفسور را نمی‌فهمد. بقیه دانش آموزان نیز گیج و متحیر بودند و از وحشت دستها را جلوی دهانشان گرفته بودند. پروفسور تریلانی که از سردرگمی حریم متعجب شده بود پریاد زد: "تاله نه، عزیزم. تاله نه. همون سگ بزرگ و شبه مانندی که تو حیات کلیسا و میزنه. می‌زنه. پسرم، این یه علامته بدترین علامت. علامت مرگ." www.shinoto.com بعد از نهار هری خوشحال بود زیرا باید از قلعه بیرون میرفتند باران روز گذشته هوا را پاک و لطیف کرده بود آسمان ابری بود و هنگامی که برای رفتن به اولین کلاس درس مراقبت از موجودات جادویی بر روی چمنها گام نهادند رطوبت و انطاف آنها را احساس کردند هاگرید جلوی در کلبه منتظر شاگردانش بود هنگامی که دانش آموزان نزدیک شدند هاگرید گفت بیاین بهجنبین امروز یه درس حسابی داریم درس بزرگی در پیشه همتون دور نردهها جمع بشین آهان درست شد همتون باید بتونین اون تو رو ببینین حالا اولین کاری که باید بکنین اینه که کتاباتون و صدای بیروه و کشدار مالفوی گفت چطوری سپس کتاب غولآسهای غولهایش را که با یک تکه تناب موکم بسته شده بود در آورد سایرین نیز کتابهایشان را درابلند. بعضی بعضیها مثل هری آن را محکم با کمربند بسته بودند هاگریت با قیافه دلشکسته گفت هیچکس نتونست کتابش رو واکنه همه به نشانه جواب منفی سرهایشان را تکان دادند هاگریت گفت باید اونو نوازش میکردی ببینی طوری این را گفت گویی کاری از این سادهتر در جهان وجود نداشته است مالفوی پوسخان زد و گفت چقدر ما احمق بودیم چرا خودمون هست نزده بودیم هاگرید سرش را پایین انداخته بود و هر که میخواست اولین جلسه تدریس هاگرید موفقیتآمیز باشد آهسته به مالفوی گفت ساکت شو مالفوی هاگرید که ظاهرا سرقشته صحبتهایش را گم کرده بود دوان دوان به داخل جنگل رفت و لابهلای درختان ناپدید شد مالفوی با صدای بلند گفت حالا هرچی بگذره ورد این کلاس بهتر میشه اگه به بابام بگم که این حالو استاد شده عترج شاک در میاره هری دوباره گفت خفه شمال فوی ناگان یکی از دانش آموزان به آن سوی مرده اشاره کرد و جیغ کشید دوازده جانور عجیب به سوی آنها یورت میرفتند هری هرگز در عمرش چنین موجوداتی ندیده بود بدن پا و دم این جانوران به اسب شباحت داشت اما سر دست و بالشان شبیه یک اقاب عظیم و جسه بود نوکشان بزرگ و خاکستری و چرشمای درخشانشان نارنجی بود ناخونهای هر یک از چنگالهایشان بلند و بسیار مرگبار بود به گردن هر یک از آنها یک قلاده پهن چرمی با زنجیر بلند و سر دیگر همه زنجیرها در دست بزرگ و پهن هاگرید قرار داشت که پشت سر این موجودات دوان دوان وارد محبته میزد، و زنجیرها را تکان میداد تا آن موجودات را به سمت نردههای نزدیک دانشآموزان هدایت کند وقتی هاگرید به نردهها نزدیک شد همه خود را عقب کشیدند و او افسار آن موجودات را کشید و به سمت نرده برد هاگرید با خوشحالی برای بچه‌ها دست دستکان داد و فریاد زد اسم این موجودات هیپوگریفه خیلی خوشگلن نه هری منظور هاگرید را درک میکرد بیننده ابتدا با دیدن این موجودات تعجب میکرد و پس از آن کسی نبود که لب به تحسین نگشاید موجودی با نیمتنهٔ اسب و سر و بال و چنگال عقاب که پرهای درخشان بدنش با ضرافت خاصی تبدیل به موی اسب میشد دستش را به هم مالید و لبخنزنان گفت خب اگه میشه یه ذره بیاین نزدیکتر ظاهران هیچکس نمیخواست جلو برود بعد ادامه داد اولین چیزی که باید بدونین اینه که هیپوگریف ها خیلی مغرورن زود ناراحت میشن پس هیچ وقت نباید بهشان توهین کنین چون ممکنه آخرین باری باشه که این کارو میکنین اول میرین جلو تعظیم میکنی. بعد صبر میکنین اگه اونم تعظیم کرد اجازه داریم بهش دست بزنین ولی اگه تعظیم نکرد فورا ازش دور بشین چون ناخونش ببجوری تیزه خب حالا کی میخواد اول جلو بره؟ اکثر شاگردان در جواب او یک قدم عقب رفتند هاگرید با نگاه ملتمسانهی پرسید یعنی هیچ کس نمیخواد بیاد؟ هری گفت من میام آفرین هری خب بذار ببینیم میتونی با کجمنگار کنار بیای؟ یکی از زنجیرها را از بقیه جدا کرد و بعد قلاده را از گردنش درآورد. در آن سوی نرده نفس دانش آموزان در سینه حبس شده بود مالفوی با بدجنسی چشمایش را تنگ کرده بود هاگرید به آرامی گفت ببین نری خیلی آسونه وقتی توی چشمش نگاه میکنی سعی کن اصلا پلک نزنی اگه زیاد پلک بزنی هیپوگریف ها به اعتماد نمیکنند. بلافاصله بلا فاصله هری پر از عشق شد اما باز هم آنها را نبست کجمنگار سر بزرگش را برگردانده بود و با یکی از چشمای نارنجیش خسمانه به هری نگاه میکرد. هاگرید گفت آفرین، عالیه. حالا میتونی تعظیم کنی هری تمایلی نداشت که پشت گردنش را در برابر کجمنگار به نمایش بگذارد اما اطاعت کرد تعظیم کودایی کرد و دوباره ایستاد هیپوگریف که هنوز به حالتی تکبرامیز به او نگاه میکرد از جایش تکان نخورد هاگرید با نگرانی گفت اه خوبه هری حالا بیا کنار خیلی آروم اما ناگان هیپوگریف دستایش را خم کرد و جلوی چشمان متعجب هری تعظیم کرد و به همان حال ماند هاگریت که به وجد آمده بود گفت آفرین هری کارت عالی بود خب حالا میتونی بهش دست بزنی منغارش نوازش کن زود باش هری که ترجیح میداد به جای نوازش کردن جانور از او دور شود آهسته جلو رفت و دستش را دراز کرد چند بار منغار ایپوگریف را نوازش کرد و جانور که ظاهراً از این کار لذت میبرد چشمایش را بست همه کلاس غیر از مالفوی کراب و گویل که معیوس شده بودند لب به تحسین هری گشودند. حقریت گفت خوبه هری. حالا پاتو تو بالای بالش و سوار شد. هری پایش را روی محل اتصال بال به بدن جانور گذاشت و بالا رفت و پشت آن نشست. کجمنگار از جایش برخواست. هری را یک بار دور محوطه نرددار چرخاند و در میان سیل تشریق دانش آموزان به زمین نشاند. عزیزی شنونده سومین قسمت از بازخانی رمان خریپاتر و زندانی زندانیاسکابون رو هم شنیدید امیدوارم تا این قسمت از رمان رو پسندیده باشید و شب‌های آینده نیز با ادامه این بازخانی ما را همراهی بفرمایید خدایا رو نگهدار شما تصر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com